اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سال سائل بی واقع به نام خداوند بخشنده بخشایشگر تقاضا ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد این ليس له دافع. این عذاب مخصوص کافران است و هیچ کس نمیتواند آن را دفع کند من الله ذو از سوی خداوند ذو خداوندی که فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج می‌کنند تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان, في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فرشتگان و روح فرشته مقرب خداوند به سوی او عروج میکنند در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است فاصبر صبرا جمیلا پس صبر جمیل پیش کن اینهم يرونه بعیدا زیرا آنها آن روز را دور میبینند و نراه قریبا و ما آن را نزدیک میبینیم یوم تکون السماء کلمه. همان روز که آسمان همچون فلز گداخته می شود و جبل و کلیم و مانند پشم رنگین متلاشی خواهد بود و خمیون خمیم و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمیگیرد. یوبصرون هم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ببنیه آنها را نشانشان میدهند ولی بلی هرکس گرفتار کار خیشتن است چنان است که گنه دوست می دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند و صاحبته و و همسر و برادرش را و اساسیلاته الهی که و قبیله اشراق که همیشه از او حمایت میکرد ومن من در زمین ثم ینجی و همه مردم روی زمین را تا مایه نجاتش کردند گلا انها لظا هرگز چنین نیست شعله های سوزان آتش است نزاعتن دست و پا و پوست سر را می و میبرد. تدعو من ادبر و تولا و کسانی را که به فرمان خدا پوشت کردند صدا میزند و جمع فاوعا و همچنین آنها که اموال را جمع و زخیره کردند این الانسان خلق هلوعا به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است اذا مسه الشر جزوعا انگامی که بدی به او رسد بیتابی می کند و اذا مسه الخیر منوعا و که خوبی به او رسد مانع دیگران می شود مگر نمازگزاران الذين آنها که نمازها را پیوسته به جایی آورند والذین معلوم و آنها که در اموالشان حق معلومی ست للسائل والمحروم برای تقاضا كننده و محروم والذین یصدقون بیوم الدین و آنها كه به روز جزا ایمان دارند والذین هم من عذاب ربهم مشفقون و آنها كه از عذاب پروردگارشان بیم بیمناكند این ربهم مأمون. چرا که هیچ کس از عذاب پروردگارش در امان نیست و آنها که دامان خیش را از بی افتی حفظ می کنند. إلا على أزواجهم أو ما ملكت یمانهم فإنهم غیر ملومین جز با همسران و كنیزان چرا كه در بهرهگیری از اینها مورد سرزنش نخواهند بود فمن ابتغا وراء ذلك فولئك هم العادون و هركس جز اینها را طلب کند متجاوز است لأماناتهم و الذین هم راعون و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت میکنند کنند و هم بشهاداتهم قائمون و آنها که به ادای شهادتشان قیام می نماگند و على صلاتهم یحافظون و آنها که بر نماز مبازبت دارند آنان در باغهای بهشتی گرامی داشته می شوند این کافران را چه می شود که با سرعت نزد تو می آیند عن اليمين وعن الشمال عزين راست و چپ گروه گروه و آرزوی بهشت دارند ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنته النعيم آيا هر یک از آنها تمنا دارد که او را در بهشت پر نعمت الهی وارد کنند كلا انا خلقناهم مما یعلمون هرگز چونین نیست ما آنها را از آن چه خودشان میدانند آفریده ایم فلا اقسم برب رب المشارق والمغارب انا لقادرون سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم علی ان نبدل خیرم منهم و ما نحن بمسبوقین که جای آنان <سخن> را به کسانی بدهیم که از آنها بهترند و ما هرگز جز مقلوب نخواهیم شد فدرهم یخوضو و یلعمو حتی یلاقو یومهمو آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود روند و بازی کنند تا زمانی که روز موعود خود را ملاقات نمایند من سراعا, سراعا نصب همان روز که از قبرها به سرعت خارج می شوند گویی به سوی بت ها می دوند. قاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده و پرده‌ای از ذلت و خاری آنها را پوشانده است این همان روزی است که به آنها وعده داده میشد.